بسم الله الرحمن الرحيم فنجمين نو از انشاء التلبی چی بود؟ نداء نداء هست امسلش بیا القواعد قواعد صفحه 211 النداء و طلب الاقبال نداء چه هست؟ طلب اقبال هست طلب توجه هست ها؟ شما طلب میکنی که طرف به شما چکار میکنه؟ روی کنه، توجه بکنه به حرف نائب مناب ادعو طلب اقبال کردن به حرفی که جانشین ادعوه یعنی شما به جای که بگی صدات میزنم، طلبت میکنم، فرایت میخوانم به جای این میگی چی؟ یه حرفی که جانشین اینه پنجا سه ادوات سه ثمانه عدوات ندائی هشتا هستن یعنو که شما در عربی ندا میزنی به عبارتی جانشین عدو هستن چند تا هستن؟ هشتا یک همزه مثل اع ای هست آ یا هست وا هست وای هست ایا حیا وا این هشتا همزه ا یا آ آی ایا حیا وا اینا حرف پس همزه ای، یا، آ، ا ی حیا، ح و نه این واها واقعا اند ایو حمزه ایو یاو، آو، آیو، ا حیاو، ا و خاطر این جداگانه خوندم که بدون اونا واو اعطف خوب، حالا میاد شرحشون میده که اینا چه کاربورده دارن؟ قاعده پنجا چارون الحمزه تو و ای لنداء القریب این تا برای نداء قریبند یعنی کسی که بارت قریبه شما میخوای منو ندا بزنی با حمزه او ای نداء بزنی و غیر هما و بغیر از این تا یعنی ششتای بعدی لنداء البعیدی برای نداء چه بکاربوردارد؟ بعید قاعده پنجه و پنجه یه چیزی جالبی میگه میگه که قد یونزل البعید و منزلت القریبی فیوناده بالهمزتی و گاهی قرار داده میشه بعید به منزله قریب یعنی به کار میره اون عداتی که برای بعید برای قریب من بعیده رو برای شما به کار میبرم که اینجا قریب فیوناده بالحمزتی و ای پس ندازه ده با حمزه و که برای قریبند حمزه و که برای قریبند برای بایید بکار میرند چرا اشارتا الی قربه من القلب و في الزهن تا اشاره باشه که دروسه اللحاز فاصله باییده ولی اللحاز قلب و اللحاز حضور در ذهن چیه؟ قریبه شما یک کسی رو که بعیده با, با حمزه و ای که برای قریبند نداشت میزنی چرا؟ تا بیانگر این باشه که آقا در قلبت نزدیک حضور داره پس این غرض بلاغیش هست و قد یونزل القریب منزلت البعیدی فیونادا به غیر الحمزتی و ای و قریب به منزله بعید میشه آ؟ قریب به منزله چی میشه؟ بعید قریب آه ولی به منزله بعیدش میکنی یعنی با حمزه و ای ندا نمیزنی بلکه برای اون عداتی از اون عداتی استفاده میکنی که برای بقید. بعیدان اشارتاً الی علوه مرتبتی اینجا چرا؟ بگیت تا اشاره باشه به اون رتبه بالایی که داره او انحطات منزلتی یا تا اشاره باشه که منزلت و جایگاهش پایین هست او غفلتی هی یا غافل بودنش چهسب بعد مال اون کتابه رو نگاه کن چی نوشته بله به خاطر غافل بودن او غفلت هی و چه نوشته کتاب شما خلاصه بیا توضیح شدیم بایدن ولش کن یا به خاطر غفلت و مشغول بودن ذهنش یا به خاطر غفلت و بیخیال بودنش بینی که اون مخاطبت غافله این کار انجام میدی یعنی با بعید از ادوات بعید استفاده میکنی پنجا و چی اونجا چی نمیشته؟ چی او خدای بله انما اي او غفله و شرود ذهني بله و شرود ذهني بله يعني انكه ذهنش اونجا نيست و شرود ذهنه يعني هم شواردها شوارد و موارد شارد به اون چیز میگن که فراریه فهمیدم آ فرار میکنه فرار یا به خاطر حواس پرتیش خاطب اونجا های ولی چون قافله حواسبرته شما یعنی خیلی همین بله میایی با عدات بعید اونو چکار میکنی به این شروعی ذهنی از خیلی مخافی میگه به چه ال... علت های شما میایی برای کسی که قریبه از عدوات بعید استفاده میکنی براش علت های مختلفی آورد یکی از اون اللت اینه که طرف غافله اووری که داری با حرف میزنی مخاطب چیه غافله ذهنش اونجا نیست حواسش اونجا نیست تو نیست. بله یکی از ضلتاش اینه که شما میی غریبو به منزله چکار میکنی؟ بعید یخر ج ن ده و معناه اصلی الى مع ااخرا استفاد من خارج میشه ندا از معنای اصلی به معانی دیگر؟ که از قرینه گرفته میشند که از چی گرفته میشن فهمیده میشند که از زجری و التحصور و الاغراه مانند زجر و حسرت خوردن و اغراه بله پس اینا بیا داخل قسمت امثله کتب ابو طیب الالوالی و هو فی الاعتقالی ابو طیب والی، مینویسه برای که والی که از نزدیکانش هست در حالی که این والی در زندان بوده و هو فی الاعتقال در حالی که والی در چی بوده؟ در زندان بوده میگه امالک رقی و من شأنه هبات اللجینی و اطق الابید دعوتو که اند, اند انقطاع الرجاء ای والموت منی که حبل الورید میگه ای صاحب عبودیت من رقی آه این اینا امالک اعه حرف نداه ولی اینجا به خاطر غرز بلاغی به جای این که از عداتی استفاده میکنه که به معنای بعیده از حمزه استفاده کرده حمزه برای قریبه در حالی که مالک زندانه بعیده بخواد بهش بگه که آقا تو هنوز تو زهن من حضور داری در تو برای من مهمی تو قلب من هستی متوجه شدی؟ پس اینجا از چی استفاده شده در این مثال؟ از همزه در حالی که حمزه برای نداهای قریب استفاده میشه یو عید برای قریب پس والی تو زیاندانه ولی این داره از چی استفاده میکنه؟ برای قریب بله در در قلبش نزدیکه مالک رقی و من شأنه هبات اللجیل و ادقل ابدی ای مالک عبودیت من و کسیک این هست که نقرمی بخشد و برده آزاد میکند فرایت خواندم هنگام نبود امید و موت از من بمانند رگ گردن است پس اینجا در این مثال حرف ندای ما حمزه هست ولی در اصل برای چه, چه معنایی داره؟ برای ندای قریبه ولی اینجا برای بعید به کار رفته خدش قفته قد ينزل القريب منزلتال بعيد وقد ينزل البعيد منزلتال انبعيدة ولی جب منزلية قريبة. قريبة وقال أبو نواس يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أفوك أعظم اراب اگر چك گناهان من زیادانت ولی دانستم که افوه تو فراتر است بزرگتر است اینجا در این مثال می‌بینیم که از یا استفاده شده است در این مثال از چی استفاده شده است؟ یا شدی؟ میگه سببش این هست که منادا در مثال دوم جلیل القدر هست بزرگ منزلت هست و گویا که این درجه بزرگ و دورش بعد در مسافت هم هست لذا از یا استفاده کرده از چی استفاده کرده؟ یا از یا در اصل یا برای چیه؟ باید. برای ولی الله مطال نزی اما از با تا جبب بعید بودن منزلتش و درجهش گویا که مسافتش هم چیه دور هست و از چی استفاده کرده؟ yeah. از یا استفاده کرده وقال يفتخر آبائه و قال الفرزدق یفتخر به آبائهی و یحجو جریرن فرزدق در حالی که به پدرانش افتخار میکند و حجم میکنه جریر رو چی میگه؟ حجم ستا بمانه یعنی کم باله باله. اولایک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامعو میگه پدران من اینها هستند زمانی که جم میشند نگاهشون کن تو هم بمانند پدران من بیار آ درو اونو خورد میکنه درو چیکار میکنه متوجه شدی این جماعت یعنی چی یعنی زمانی که در جم جم بشن اذا جماعتنا المجامع ببیشر اینجوری اولایک آبایی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جريرو المجامع میگه اینایی که تو جم جم شدند اینا پدرای من هستند زمانی که با هم جمع میشن تو هم بهمانند چون بیار داره حجوش میکنه که تو داری سطح نیستی خب اینجا یا جریر از حرف ندایه چی استفاده شده؟ بعید. بعید در حالی که داره مخاطبش قرار میده میگه اینجا به خاطر این که متکلم بر این باور بوده است که این آقا جایگاه نداره ها پست بی همین پست بودن و بی ارزش بودنش گویا که بعد در مسافت ها هست لذا اومده با چی خطابش کرده بابعید عید با اید. اید که مون یا باشه یا جریش وقال قال آخر و دیگر گفته ایا جامع الدنيا لغیر بلاغتم لمن تجمع الدنيا و تموت ای کسی که دنیا رو پی در پی جمع میکنی بدون این که بش برسی برا دنیا رو جمع میکنی در حالی که تو میمیری؟ اینجا از چه عداتی استفاده شده؟ از آیا از چه؟ آیا. آیا یا داریم و آیا هم داریم ولی آیا برای چی بود؟ باید. برای بعید بود در مثال آخری از جایی که مخاطب غافل مشغول هست غافل هست. ذهنش جای دیگره میاد با حرف ندای قریب نداش نمیکنه. بلکه با اداتی که به معنای برای بعید استفاده میشه چرا؟ میگه به خاطر این که غافل هست مخاطب گویا که همراه با متکلم در یک جا حاضر نیست از این جهت اومده با چی خطابش کرده؟ از اون جایی که مخاطب حواسش پرته غافله گوینده میاد با بعید مخاطبش میکنه یعنی گویی که همراه با, با گوینده نیست زهنش اونجا نیست دیگه؟ گویا که با گوینده نیست متوجه شدی؟ چون ذهنش غافله مشغوله ذهن اون مخاطب اونی که باش داره حرف میزنه لیزم متکلم و گوینده میاد با عدوات بعید گویی که باش دیگه نیست خطابش قرار میده میگه آیا جامع دنیا لغیر بلاغت لمن تجمع دنیا و انت تمود. یامون بله برای هر 8 تا نه آورده بود. تو دیگر برای هر 8 تا و این فقط برای 4 تا آورده بود.